با درود بر شما هم میهنان و بینندگان ارجمند این برنامه به خوشنودی اهورا مزاب این برنامه رو آغاز میکنیم من مزار هستم از هموندان جنبش نوزایی یا رنسانس ایرانی و همکنون شما بیننده برنامه زرتشت هستید که این برنامه کاری است از سوی جنبش نوزاری ایرانی امروز به همراه مهمان بسیار ارزشمندمون مهندس روبد کاملان جمشیدی پرنشین انجمن ماترا در پیشگاهتان خواهیم بود همونگونه که میدونید این برنامه سری برنامه هست و ما پیشتر با موبد بزرگار یک برنامه رو با شما همینان داشتیم که درباره باره تفاوتهای دین بگی با یا یامقایب سامی بود که دیگه ما از این برنامه به بعد می به خود دین بهیم و سپاسگزارم از موبود بزرگوار که مهبر و دوباره در این برنامه همراه ما و شما بینندگان هستم موبود بزرگوار درود فراوان ما بر شما خوشنگوی از خداوند جهان و خرد من هم درود میگم به شما و به همه بینندگان گرامی امیدوارم که بتونیم با این سری گفتگوهایی که با هم داریم روشنی بیشتری بندازیم به آن چیزی که به حال بنیان باوری ما و ایران و ایرانی بوده و به حال به واسطه این باورها و این جهان که درون ایرانیا بوده خب ها جامعش رو به خوبی نگه داشته با سربلندی زندگی کرده و گفتیم به برحال به شبه های دلاله گوناگونی که گفته گوش جای دیگر است، خب امروز به اینجا رسیدیم اکنون هستیم اما بر روی با نگرش به این که این درخواست و نیاز بر روی چه سوی جامعه ایرانی ببیشه از سوی جامعه ایرانی و همچنین در میان ملل دیگر دنیا به هر حال چون بعد که بیشتر وقت گفتگو میشیم میبینیم که چرا این نیاز بیشتر وجود داره. برحال من در خدمتون هستم تا اونجا که دستم بر بیاد تا اونجا که دانایی هم دانشم و آگاهیام اجازه بده اونا رو با شما انباز خواهم شد و در خواهم شد. سپاسگزاریم از شما بسیار پرسندم که دوباره با شما موبد بزرگوار در این برنامه همراه هستم و دانش گسترده شما در این برنامه بهد من میشه. در آغاز برنامه بخوام پیش از اینکه وارد جسار این نشست بشیم، این برنامه بشیم. میخوام از موبد بزرگوار بخوام که برای ما، در پیام دین بهی برای مردمان چه هست آرامون بگه اینکه این دین بهی چه پیامی برای مردمان داره و سپس پس از این پیام میپردازیم به دستار برنامون موید بزرگار محب و عزیز و برامون از پیام دین بهی بگیم تاشب سپاس کوزارم آره بهترین راه شاید این باشه که برای آغاز بشه تا اونجا که میشه ساده کرد و به سادگی این پیام رو و این بنیانهای این دین و جهان بینی رو به سادگی در اختیار خودمون و مردم بذاریم من اینجوری کوتاهش میکنم و فشردهش میکنم با توجه به تمامی این دین و آین و فرهنگ از ایران باستان و دین بهی زرتشتی و مجموع اینا رو هم برداشت من این گونه هست که یک انسان ها و همه آنچه که ما جهان زنده میگوییم با وجود همه رنگارنگیها و نمود گوناگونی که دارن در بن در ریشه یگانه است به هم پیوسته است در هم تنیده است از یک سرشت و گوهر هست که در تعریف این سرشت و گوهر و بن و ریشه در فرهنگ ایرانی خدا بهش گفته می‌شده یا اهورا مزدا بهش میگیم که اهورامزدا نماد وریشه است و اون سرچشمه است به قول معروف و پس این نماد این یگانگی جهانی است این به نظر من هم مرکزی ترین و هم بنیادی ترین بخش این نگاه و این جهان بینی است که چیز تازهی هم نیست ولی باید دوباره روش انگشت گذاشت. در این جهان هستی که ما هستیم خود هستی یا به زبان دیگر زندگی مرکز توجه است یعنی هران چیزی که این زندگی رو در کل برای همه موجودات زنده برای همه آفریده ها خوب نیک معنای سازنده، بارورنده، افسایش نگاهبانی از زندگی، پایداری زندگی و پویایی زندگی. این هست که مرکز توجه است و همه چیز در به اون نگاه میکنه. پس هر چیزی که در این راه یاری برسونه این نیک و خوب و سازنده است. به هر چیزی که وارون اون باشه ضد اون باشه پاد اون باشه برابر اون باشه یعنی زندگی رو آزار برسونه جان رو آزار برسونه ویرانگری بکنه کاهندگی بکنه از پیشرفت خوبش جلوگیری کنه این بد ناخواستنیه ویرانگری رینبهی میگه که ما این راه درست و راه راست و راه نیک رو باید برگزینیم و مسئله گزینش میاد. و بنیاد بعدی اینه که انسان از سرشت و گوهر میخوایم بگیم آزاد هست. آزاد آفریده شده و میتونه اون باور دلخواه خودش رو در زندگی خودش برگزینه هر بر مبنای خرد و دانش و خیلی چیز دیگه که تعریف های دیگه بهش می میتونیم برسیم. و مهم آن است که بداند که هر گزینشی هم اون میوه و پیامد و برآمد و نتیجهی داره که هماهنگ با اون گذینش ها هست و اینجاست که مسئولیت داره پیشگاری داره پاسخگو هست انسان نسبت به اون گزینش‌هایی که داره این ستا شاید بگم که از بنیادی ترین چیز ها هم. و سپس میاد یه تعریف داره که خب این جهان بر مبنای یه سر قانونمندی پیش میره قانونمندی که دین بهی اونها رو اهورایی می خدایی میداند که بگیم و بر اساس اون آفرینش یا پیدایش نمودهای گوناگون هستی و پیشرفت زندگی بر اساس اون به صدا بنیادها و قوانین هستن که اونها نامهای گوناگون دارن حالا من والد نامها و واجه ها اینا نمیشم که سختش نکنیم ولی اون رو هم بخوام من به کوتاهی بگم این است که بنمایی هستی آنچه که هستی رو کلا زندگی رو میافعینه جنبش و دگرگونی و افزایان دیگیست یعنی حرکت یعنی جنبش یعنی تغییر هم دگرگونی که فرهنگ دین بهی گوهر و بنمایی و در واقع این پایدار بهش میگه سفنتامین حالا با کاری کائناری پس هستی بر اساس جنبش و دگرگونی در حرکت و این جنبش و دگرگونی بر اساس یه سری قانونمندی هاست که بخششو بهش میگیم قانون طبیعت اگهشو بذاریم و هم میاد تو جامعه انسانی در انسان و جامعه انسانی نقش خودش رو بازی میکنه اون رو ما به طور کلی بش بهش میگیم آشا یا آرتا که همون راستی و درستی باشن. در جوامع انسانی، در اخلاق انسانی، راستی و درستی از اونا یاد میشه و از اندیشه سخن میگی، انسان اندیشمنده. خب، این اندیشه است که تمام این چیزها رو برای ما ساخته و پرداخته و دراندهش داریم گفتگو میکنیم. حالا میگه این اندیشت باید نیک باشه. این اندیشه نیک، این خرد درست و بجاست که درست میسنجه، درست و اون راه راست و درست رو برمی‌گزینی. پس وقتی که اندیشه نی که راه درست رو شناخت و انتخابش کردی اون وقت در راهش باید بکوشی، در راهش باید کوشش کنی. و اینا بش می‌گه خشترا یا شهریاری یا شهریور یکی از معانیشین این است ولی میشه به های مختلفی هم زند بشه یا تعبیر بشه. پس کوشش در اون راه درست و نیک اگه درست بری میرسونت به یک افسونندگی میرسونت به یک آرامش میرسونت به یک مهرورزی در عین اون آرامش این آرامش رو که حالا آرمیتی میگیم در این جهانبینی. وقتی به اونجا رسیدی دیگه پس از اون بهتر شدن است و افزایندگی است و پیشرفت است که اون بهتر شدن میتونه دراز مدت باشه و همیشگی باشه بنابراین بر به سادگی همه چی به هم پیوسته است بنابراین همه سرنوشت همه موجودات به هم مربوطه زندگی باید ازش نگاهبانی بشه به شکل درست برای نگاهبانی درست از زندگی باید قوانین زندگی رو شناخت که اونجا دانش میاد بیرون وسعت خرد میاد وسعت اندیشه میاد وسعت و بعد اون اندیشه نیک به کردار نیک باید بکشه تا اون قوانین درست به قول معروف حفظ و رعایت بشه تا زندگی هم پایدار ببونه و به درستی پیش بده. این مجموعه و کوتاه شده پیام فرهنگ بهی فرهنگ مزیستی فرهنگ ایرانی هر چیز رو بخواهن بذاریم و دین بهی استش. بله بسیار سپاس گذارم از شما بسیار پیام روشن و پیرایی بود براستی من وقتی شما درشونی دفتگونی کرده این داشتن می به اینکه اگر همه مردمان همه مردمان این گیتی بخوان این گونه که دین بهی آموزش میده بی اندیشن کنند، کنن بسیاری از دشواری در دیتی برداشته میشه. بسیاری از, این بسیاری از این براف هایی که در میان مردمان هست برداشته میشه. بسیاری از این آسیب هایی که به جامعه داره زدی میشه به گیتی داره زده میشه به زمین داره زدی میشه به آب و آسمان داره زده میشه. بسیاری از اینها برداشته میشه و ما میتونیم یک زندگی خوب همه این مهدم در کنان را هم داشته و با امیده که روزی چنین بشه و همه بتونیم با اندیشه اینی که مون اینکونی که از شدرتاش به ما موقتر رفتار کنیم بی اندیشیم و رفتار کنیم و سفاسکوزار هم از شما در باید بسیار گیرات هست دو با دل... خاش بکنم یک چیزی هم که اینجا افثون کنم بر اساس گفته شما این است که پس چرا؟ چنین نیست اونجا که شما میگید که مردم دنیا اینو دریابند دریاوند یا این راه درستو و دریاوند درست زندگی کنند خب چیزی که جلوی این راه راستی رو میگیره خب از قدیم و در این فرهنگ بهش دروغ گفته شده خب که دروغ اون وقت باید وارد بشیم بس دروغ چیست که اون داستان خودش رو دارد ولی کوتاه شده بر اساس همین چیزهایی که گفتم دروغ آن چیزیست که این راستی ها رو بفوشاند. نگذارد که اینها به اندیشه مردم برسد. و از راه های گوناگون اینها به اندیشه مردم نمیرسد با سیستم های باوری برمبنای دروغ با مشوعی و روانشویی که به شک گوناگون، در دل عدیان در دل فرسفا در دل بسیاری چیزهای دیگر شده و میشود و به کوتاهی بگویم دروغ، که من همیشه با اون دو تا حرف اولش د و ره ازش یاد میکنم که در درندگی در هم ما داریم یا پاره کردن هران چیزی هست که ما رو از این یگانگی از این پیوستگی از این راستی از این به خود رسیدن در خود یگانه شدن با دیگران دیکار شدن اینها رو میبره اینها رو پاره میکنه راستی رو را پاره میکنه وارون نشون میده همه اینها رو ما میگیم دروغ. بنابراین یکی از راه اینکه راستی رو بشناسیم و دروغ رو بشناسیم و در نمود های باش به راستی برخورد کنیم و مبارزه کنیم و راه مبارزه شدیم که راستی رو شدیم. این خواستم در تکمیل حرفان بگیم. بله سپاس به این امید که این باشه و همه مردمان بشنمن این پیامی که شما اکنید سخن گفتین رو بشنمن و با انیشه روچنده رو بین و براسی سود همه ما در این هست نه اینکه ما خود برخی نظافه هست که برای سواب یا برای اینکه خداوند پشش میکوشه ولی در این دین میگویند که خودت و دیگران سود درند زندگی خوبی داشته باشیم. امید که همه این رو در در بفهمند که این واقعی که اندیشه نیک داشته باشید همه این گونه باشند ما یک جامعه با امنیت جامعه پیشرو و سازنده خون من سپاسگزارم از شما و اکنون می درباره بلخی دو سال که برای بسیاری از همیهنانمون که میخوان با این دین آشنا بشن و یا در راه آشنایی هستن و یا بسیاری دوستان آگاهی درباره این دین پیدا کنن میخوام بپردازیم امروز به بعضی از این دوستاها و بعضی این واجه ها که اینها رو یک یکی باز کنیم که اینها مفهومش چه هست نخوستین بله. نخستین ای که میخوام بهش بپردازیم و شما مرهم ازی برامون دربارهش بگین واجه دین هست که این می‌بینیم میبینیم که در مذاهب دیگر هم واژه دین که پارسی هست رفته میخوام درباره واژه دین برامون بگین و اینکه دین بهی در میان زرتشتیان چه نامهایی درست هست که برای این دین برده بشه به دین بینی، دین زندویشی درباره اینها ترامون شخن بگیم سپاسگذار میشه بفرد چشم چشم میتونم اینجوری بگم پیش از اینکه خود واژه دین رو باز هم یه بار دیگر باز بکنیم در مورد نام ها گفتید این رو من به کوتاهی بگم برای کسایی که خب شاید هنوز نمیدانند نام این دین از گذشته یعنی وقتی میگیم از گذشته وقتی ما گاتاهای یا مانتراهایی که در واقع پیام اشو زرتشت هست به اونا بازگردیم که رفرنس ما هستند در اونجا از دین بهی نامورده شده یا به زبان خود زرتشت و آن زمان دعه نام و انگوی دین بهی این, این نامیش که از اون موقع ورنوش بود به خاطر همین به زرتوشتیان بهدینان هم گفته میشده و میشه سپس نام نام دیگری به نام مزده یسنی یا مزده یسنا مزده نام خود دین مزده یسنی است که پیرو به اون راه هست بستر. که خب واجه مزدا درش میاد که نام خداوند هست و واژه یسنا یا یسنی یا یسنا که روی هم رفته در چیم ستاینده اگه بخواهی بگیم هستش پس مزده اصنی یعنی ستاینده مزدا. اگر مزدا رو هم ما به یا دانش یا دانش یا ابر خرط بازگردونیم برگردونیم که درست هست برای میشه ستایندگان خرد پس مزده اصنی هم یه نامشه که کوهن هست و سپس زرتشتی زرتشتی هم به عنوان که پیروان راه منتران یا آموزگار بزرگ پیام آور اشرو زرتوش هستیم پس زرتشتیان گفته میشه پس بهدینان زرتشتیان مزدی اصنا این سنامای اصلی که برها بر روی ما هست یا این دین است. خود, خود دین اگه بخوام کوتاهش باز بکنم چند تا رو میتونم اینا رو به کار بکنم یک بینش دو وجدان، سه مارس که میذارم آگاهی آگاهی از سرشت بنیادی. یک کوچولو باز بازش کنم بینش وقتی ما میگیم شاید درستترین در واژه از نظر واژگانی هم باشه که از خود واژه دائما میاد یعنی چی بینش بینش خب از دیدن میاد دیگه خب گفتیم که بس دیدنی است که دیدنی است که دیدن ظاهری نیست دیدنی است که درونی است درونی به این مفهوم که بتونیم درون بینشی یا دید، دیدگاهی که بتونه درون چیزها رو ببینه حقیقت چیزها رو ببینه راستی چیزها رو ببینه نه اون چیزی که در ظاهر فقط چشم میبینه خب بخوام در پیوند با اون تعریف اولیه‌ام بذارم که گفتیم پیوند و یگانگی هستی آن بینشی آن نگاهی که بتواند این پیوند ها رو ببیند یا دریابد بفهمد از خود بکند آن, آن, آن بینش رو دین می نامی. یعنی دیدن این یگانگی هستی فهمیدن یگانگی هستی این یک دو گفتیم از زندگی گفتیم و اون چیزی که زندگی رو پایدار نگه میداره و درست به پیش میبره. اونجاست که مفهوم وجدان به گونه‌ای میاد وسط. یعنی اخلاق، وجدان، اینا هم به میون میان. اخلاق چیز، اخلاق هم باز یعنی همون روش های رفتاری و گفتاری که بتونه اون گنمایه ها رو حفظ کنه در اون جامعه ها. اون راستی و درستی دنبالش باشه و نگه داره. و مردمان رو یگانه گانه و بامه با هم نگه. اون رو بش اخلاق و هرچی که وجدان یعنی اون احساس درونی هرکسی هر کسی که این احساسش پشمی که این کار درسته در اون راستا هست یا نیست نگاهبان ماست پس این هم یک معنای دیگر دین هست و اون که من گفتم سرش ببینید انسان به عنوان یک آفریده اسمشو بذاریم از نیروی اندیشه برخورداره و چون از نیروی اندیشه برخورداره از نیروی آفرینندگی و سازندگی نسبت به حد دست, دست کم جانداران دیگری که با ما در روی کلوری زمزدگی کنن برخوردار هستش خب؟ بنابراین کردن و پی بردن به این نیروی درونی آفرینندگی درست در انسان که از هماهنگی به قول معروف اون نیروهای درونیش باید به میون بیاد و به بیرون بیاد این رو هم این دینی هست که درون ما هست یعنی اگه ما پی ببریم که این نیروی آفرینندگی رو داریم در راه ازش استفاده کنیم و در راه پایداری زندگی و در راه پیوند و پیوستگی و یگانگی این دین هستش این دین همون خود خرد هست این دین همون خود خدا هست برابری اینها اینها از هم جدایی ندارن اینها یک چیزند به باز برمیگرده به اون برداشت ما از زندگی، به اون جهان دینی ما زندگی. این تعریف دینی فلسفی دین بود. حالا اگر دین رو به معنای چیزهای روز بخوایم بگیریم که اون شاید نامه، نامهای شاید دیگه روش گذاشته بشه در این گفتگوهای دینی که انجام میشه مذهب بش میگن، کیش بهش میگن، آیین ما بش میگیم، سنت ها، ترادات ها میگیم، این ها که به فرهنگ بومی مردم بستگی داره به نمودهای بیرونی و روزمره زندگی است که اون بنیانهای این دین رو کمک میکنه که در زندگی آدم باش زندگی کنه و در کنشاش به کار ببره. که اون بخش دیگر دین یا کیش زرتشتی است سنت ها،, ها، جشنها، ها، و فرهنگ زندگی روزمره ها. بهین رو اونم بخش بزرگ دیگری از هست. است امیدوار به تونسته باشم بخش های رو که وجود داره براتون باز کرد باش بله سپاسگزارم در این زمان کوتاه به خوبی باز کردیم این واژه واژه دی رو در میان گفت هاتون در بخش پایانیش فرمودید که دین زرتشتی و یا دی دین یا آین یا واژههای دیگه رو میگن من دوفتم که بسیاری چنیدم و دیدم یا خوندم که میگویند که بعضی کسان که دین زرتشتی دین نیست یک آئین هست و درست هست که به این بگوییم آئین و بخی بر این باورم که دین درسته و بخی بر این باورم که نه دین نیست که آئین هست میخوام در این باره یک روشنگری هم برای ما موقفت هم خواهش میکنم بله منم با این پریده آشنا هستم پریده است که بیشتر پریده امروز هست تا اینکه کاهن باشد. امّرچه گفتم دین میگم شوربختانه به خاطر اینکه تمام این مفاهیم ساده و بنیانی و زندگی ساز انقدر در اثر سیستم‌های باوری دیگر مورد تغییر تغییرشک تدریقل شک مفهومی قرار گرفتند. که دیگه بردن واجه, واجه هایی مثل دین و پیام و پیام آور و حتی خدا و پروردگار و اینها اه اه اینقدر از اون, اون مغزه، اون, اون راستی اون حقیقت که ما بهش میپردازیم اینقدر از اینها دور شده و اینقدر لایه‌های های دروقین روش اونقدر پوشونده با تعاریف دیگر که انسان میمونه و میگه آقا اصلا اینها رو من کنار چرا اینقدر من لگه بخوام بیان واجه دین رو بخوام بهش بپردازم و از نظر برخی توجیهش بکنم. پس میمیم یه واجه دیگه رو برمیگذیریم. میگیم آین. خب شاید در یک برهی یا یک گونهای فکر میکنیم که مشکل ما رو کرد که دیگه به نگیم دین. بگیم آین. خب من باورمندم و روی این همیشه بودم و پای فشردم که ما درستش رو بفهمیم و درست رو شجابه نازه. آین هم واجه زیباییست. به جای دین هم میشه به کار بود. ولی آنجوری که من فهمیدم از دوران جوانی به این سو در این دین و فرهنگ و آین آین رو ما همیشه به بیشتر به بخش فرهنگیش میگیم. به بخش سنتی میگیم. یا اون بخشی که مثلا میگیم آین برگزاری جشن مهرگان. آین جشن سده، آین برگزاری پیوند یا گواهگیری یا اینها رو ما بشم که میگو فیلم دستش کم آیه میگم دوستانی که تو این سالهای گذشته پرهیز میکنن از بردن واجد دین به کابودن واجد دین و چراش آینه میزاره بیشتر از این دیدگاه بهش برخورد کنند که اونها هم خوب در علاه خودشون دارن من آن را رد نمیکنم ولی من باز بر که نه جان دین درست اینایی که براتون گفتم دین ایرانی اینه که براتون گفتم اونو بفهمین آین خودش روزیم. حالا برخی از دوستان به ویژه اونهایی که در ایران زندگی می کنند و خب ناگذیر هستند به ای برای باز کردن این تعاریف دینی اینها رو با ادیان دیگر به و مقایسه کنند. واجه های مانند طریقت و شریعت و اینها رو به کار می که من پرهیز می و از به کار بردن اینها. ولی اینجوری بگیم که همون که عوستای بزرگ ما که جنگی بوده و یه ای از تمام دانش های فرهنگی ایران سه بخش داشته بخش گاتیک، بخش هاتیک یا حاتمانسریک و بخش داتیک گاتیک اون بخش هایی هستند که به خود اصول یا پایه های بنیادهای دین برمیگردن همون های که در گاته ها ما داریم و همون که به عنوان بنیان های دین زداشتو برمیگردن گاتیک داتیک دات یعنی قانون همون داد اون بخش هاییست که به قانون... قانون و قانونگذاری و اینها برمیگرده که به نظر من قانون هم قانون دینی بهتر از نگوییم بهش قانون مدنی در واقع قانون شهریست قانون مندی که زندگی اجتماعات رو به بش... بهش سامان میده برای که زندگی درستی جامعه داشته باشه بخش هاتیک یا هاتا اون بخش هاییست که بهش میتونیم آینی، فرهنگی در مورد جشن ها، در مورد رسم و رسوم، در مورد فرنگ بوم بومی و قومی و در مورد اینها صحبت میکن پس آین جایگاه خودش داره. بذاریم سر جای خودش. آین به معنای آین ها، مراسم، سنت ها، رسم و رسوم های است. دین دین است دین گاتیک و بنیادها هستند این پاسخ من هست. بسیار سفاسکوزارم من خودم بهره میبرم بسیار دارم گوش میدن گفته باتون و که حواظم به برنامه و نیکوشم که از و که هست <تصفيق> آفرید گوش <تصفيق> میدم و بهره میبرم درباره جستار دیگری که میخواستم برامن بهتر میگه بگید در زندگانی خود عشوز در هست که در اون دوره که زندگی می کردن ها جامعه چگونه بوده چگونه زندگان کرد حالا بحث بسیار گسترده و بزرگی هست ولی در این گاه کمی که داریم قونجیک میشه برای من و بینندگانم دلیل بره برام یه سپاس بزارید. خواهش می‌کنم تا تا انجا که آگاهی داریم بر اساس بر حال بیشتر نوشتجات کهن‌تر و اونهایی که بر حال به ما رسیده خب از خردها یا ریزکاری‌ها و جزئیات زندگیای زرتشت آنچنان دیگه بیوگرافی که ایشون از زندگی خودش ننوشته یا کسی به اون صورت ننوشته آگاهی های کلی این هست که یک خب از چه خاندانی بودن نام خاندانشون سپیتامان از پیتامان سپیتا بیشتر به معنای سپید، از سپید گرفته شده حالا نامشون بوده. اون کنیه خانوادگیشون بوده اه اه حالا نام پدر مادر فرزندان خوهر از اینا میگذرم نام هستش، ولی چیزی که من خودم رو بیشتر جلب میکنه توی این داستان زندگی زرتوش و در بخش های از فرهنگ کوهن ما اینها چیزهایی هستن که به زیر رفتن را باید بکشیم بیرون و اون بخش توجه و در جای درست نشاندن بخش بخش رو بذارم بخش زنانه همه ما هستش و به نقش زنان برجسته تاریخ ما و از آغاز نقش مادر عشور زرتوش که ایشون رو در واقع گونه ای فرزند رو این بار بردن که جویا باشه جویای راستی باشه یعنی مثل خیلی از انسانهای امروزه که این بچه ها رو از همون فکر میکنن که اینا به معروف ملک مطلق و باید آن چیزی که ما فکر میکنیم حتما اونا هم فکر کنند آن دینی که ما داریم یا اون باوری که ما داریم حتما باید به هر شکلی شده به اینا ترقیم کنیم و, و به حال این فرزند تویا و جویا بارو من. و خب در آن زمان هم در میان اون مردمی که داره ما آریایی مینامیم خب باورهای گوناگون شک داشت این داستان کهن دیگه حالا چگونه خدایان اصلا خدا چیزی به نام خدا و خدایان انسان آفرید اگه بخواییم میگیم اینا در ذهنیت انسان آفریده شده یک نیازی بوده و هست به بونه ای در انسان ها که همواره یه چیزی رو فرای خودشون بیاندیشن و بتونن از اون راه یه بندی یه همون ما به هم پیوستگی میگیم اینم یه بخشی از اون است که ما معنایی هست که رو زندگی بزاره. خدا و خدایانم همین نقشو داشتن بضافه اینکه ناآگاهی از بسیاری مسائل اونقدر بود که دیگه به اسمش موزه میذاریم خرافات به اونجوری بود نگاه مردم به زندگی و بیشتر از راهگاهی ترس و ترس ترک ترس از ناشناخته ها تو مردم بود خب واسه خودشون هم یه چیزایی پیدا کرده بودن یه کسایی که راه روشایی پیدا کرده بودن که با توسل به این ناگاهی و ترسایی که در مردم بود، رو می بردن خب گاته ها از اینا به نام کرپ یا کرپان نام میبره. این واژه قربان و قربانی کردن و از اینا میاد چون یکی از کاراشون کشتن جانوران بود برای به هدیه دادن به خدایا. حالا خب زرتوش هم و خانواده‌اش اینا رو می دیدن و همراه نبودن با این مسائل یعنی نمیتونستند قبول کنن که این چیزهاست هست که بنیانهای زندگی ما هست. خب ایشون خیلی پرسنده بود، میپرسید، وقتی جوای خود بیشتر بر اومد، بالا اومد سنش بیشتر شد، در همون نوجوانی، خب مثلا نامور هستش که حتی اون کرپ بزرگ رو میارن در خونه که به ایشون پاسخاشو بده، و اینشون آنقدر پرسش میکنه که پاسخی نمیماند برای اون که پاسخ دادن و خیلی برفروخته میشه و حالا در داستان هست که از اون خانه میرفته حتی از اون برافروختگی جانش رو هم میدهد حالا اینا شو من دیگه نمیدونم چقدر درست هست یا ولی به هر روی این جوان این انسان نمیپذیرفت این این رو این پندارهای واهی رو بنابراین وقتی پاسخشو از بیرون نگرفت، گفت پسیاخ پاسخی نیست که خرد من رو خوشنود کنه. بنابراین نمیخوام دیگه. خودم میرم و میپردازم به زندگی. و نگاه میکنم، سعی میکنم، خودم بفهمم. حالا داستانهای دینی همیشه به اینجا میرسه که اون پیامبر، پیاموهور، اون اشخاص که در واقع سرکرده های اون ادیان اصلا میگن در قار رفتن. در این قار نشفت، در اون, قار نشفت، در اون, قار نشفت، در اون کوه این کوه و غار هر چند که میتونه بحث یعنی فیزیکی هم بوده باشه چون چیز عجیبی هم نیست اگر در کوهستان زندگی میکردی یا جایی که به همچایی وجود داشته خب با توجه به آن تصوری که میتونیم از زندگی اوموزه مردم شکل که سازی و, و, و داشته باشیم خب یه می جایی میدون که سالیان سال انسان‌ها در اونجا زندگی کرده برای جایی بوده که بره بشینه و تفکر کنه و نه به این معنا که ده سال فقط رفته مثلا در یک نه. کلن قار و تاریکی یک نمادین هم هست. در درون تاریکی های ناغایی ها رفتن و با روشنی و آگاهی بیرون اومدن. این هم یکی از چیزهای قاره. کوه و بالا رفتن هم باز به معنای اون بالا رفتن از پله های دانش و تکامل و تاوانی که در این, در این محروم ها جای داره. بعد رویشون ایشون خودش پرداخت و زندگی رو دید تجربه کرد سنجید و روی هم رفته به قانونمندی پی برد که در طبیعت اطرافش بود اون قانونمندی رو به زندگی بشر و دیگر انسان ها و اینام به قول معروف آوار در هم و اون قانونمندی رو اسمش گذاشت اشا و بعد از راه اشا و اون قانونمندی خب به مزار رسید بقیه ها. شما از زندگیش خاستی البته من بیشتر دوباره وارد این شدن ولی زندگیشون بیشتر ما این بخش زندگی‌شون رو دیدیم. یه سری چیزا هم هست که از بیشتر افسانه و داستان ساخته شده. که یه نیاز به اونا بردازیم که البته یه بخشی هم از زنگیش هست که ایشون به حال پس از اینکه این به اون روشنایی خودش رسید و این تایامش رو عبور کرد، کسار زیادی نپذیرفتنش فقط یه سری اطرافیان و خانواده‌اش بودن. سالیان سال در محل زندگی خودش این ظاهران سرنوشت بسیاری از پیامران بوده بشکلی. و بعد مجبور شد از اون مکان زندگی خودش کوچ کنه که رفت و خودش رسید به اون جایی که به استدار گشتاس بود. اون کیان یا اون چه زمان ایشون که به هر حال شاید بتونست از اون راه به یک سری آگاهان و سرآمدان جامعه و پیامش برسونه. رسون یه دو سالی اونجا بود و گفتگوها بود و خب در اون مورد هم است که بر عرایش توتهایی کردن را از بیدش ببرن و و و, و که پیروز نشونن و روی پیامش رسید به آنان که باید میرسید و از اونجا اون, اون پیاموندین آروبار جا افتاد و شروع به گسترش پیدا کرد اینکه که پایان زندگیشون چگونه بود باز دو گونه اون خب چیزی که بیشتر در این پذیرفته شده است میگوید که در آتشگری در برخ به هنگام نیایش مثلا اون بخشی از تورانیان که اون موقع می میجنگیدن با ایرانیان آمدند و خب در اونجا ایشون جان باختند با تیغ دشمن این یکونه است خونه دیگری هم که میگوید نه ایشون هیچ چیزی نبوده و در آرامش و در میان خانواده خودش در اثر کولت خو سالی چش م جهان این دو هم برای پایان زندگیشون گفته میشه که اینها مجموعه چیزایی است که من از زندگیشون میتونم برای شما بگم ویه برقیش هرچی است دیگه بیزاریم کنار که ساخته بیشتر شاید پندارهای مردمان باشه هوای شما رو ندارد؟ بله، سپاس کدارم از چما در, در زمان کمی که داشتیم به این دو سال پرداختیم، اونی که فرنامه آینده زمانی رو یک ویژه بذاریم برای خود عشوزمبروش و های تاریخی و دینی و چیزهایی که به یادگار موندیدن از خواهی کهان ما به این بپردافتیم <تصفيق> من گمان می کنم یک حدود هفت دقیقه زمان داریم هفت دقیقه زمان داریم از این هفت دقیقه می کنم بهده بگیرم که یک در مورد اینکه یک زرتوشتی کسی که خودش رو از درون از اندیچه پیروه اندیشنهای اشو زرتوش می دونه چگونه هست چی باید بکنه؟ چگونه بیاندیشه؟ چگونه رفتار کنه؟ اگه یک کتا در این بارم بپردازیم رو تا جستالهای دیگر بفرمونه بگذاریم؟ بله. اینکه یک زرتشتی چگونه باید زندگی کند؟ اگر منظورتون اینه چگونه باید در زندگی رفتار بکند؟ خب نخواست این که اگر یک زرتشتی باشد. به این مفهوم که همه چیزهایی که داریم در مولوش گفته بود میکنیم بنیادها رو به راستی از خود کرده باشد، فهمیده باشد در زند... در... در زندگیش راستی، نیکویی، درستی، سازندگی، سود همه گانی و همه ای رو که شاید به صورت آرنگ و شعار گفته میشه که نباید شعار باشه نباید در زندگی به کار در اون را حرکت کردن اون شیوه است، اون شیوه کرداری است حالا اینکه گام به گام در هر پس هر گامه از زندگی چه بکنیم چه نکنیم این بکن نکن ها رو دیینما نمیاد این جزئیات زندگی هرکس رو به توش انگشت بذاره و بگه برای نمونه شما باید این بخورید آن نخورید این بپوشید آن نپوشید حالا این چیزها رو واردش نمیشه توی اون بخش فرهنگی آینی تر یه میاد چیزهایی که اونها رو خب به جداگونه میشه بهش پرداخت به صورت بخشی از تجربیات پیشنی ما آن اندرزهایی که داده میشه و یا اون چیزهایی که میشه به بنیادها به گونه پیوند داشته باشه برای نمونه وقتی میگیم چیه بخورید چه نخورید خب کسی اینجا پاسبان زندگی کسی نیست بیاید بیار شما چه خوردی چه نخوردی ولی بگوییم خیلی خوب اگر قرار است کشدار نشه اگر قرار از جان از جان و زندگی نگاهبانی بشه این برای همه آفایده ها هست برای جانوران هم نباید ما در جایی که نیازی نیست حالا به شکری باید نباید بکشیم با قصد اینکه بکشیم و بخوریم <تصفح> خیلی از ما میخوریم. حالا اینم یک اندرز کلی است که نخورید. نکشید، نکشید که نکشید که اصلا. بی تا اونجا هم که میشه نخورید، گوش نخورید. خب این یک اندرز است. حالا اینو بکنیم نکنیم که دیگه نمیاد گوش ما رو بگیره. وجدان ما گوشمون رو بگیره. خب و بعدش دیگه خرد هست. خرد که خرد داستان تورانی دارد که میتونیم بیشتر بهش بپردازیم. خرد هم به طور ساده از دو گونه خرد ما داریم خردی میگوییم که از درون میاد خرد سرشتین است واسه خرد آسان خرد نابای گوناگون و خیرتی که از بیرون دانش اقتصادی است یعنی مجموعه دانش هایی که از درون و بیرون میتونه ما رو راهنمایی کنه به سمت راه درست ازش بهره بریم برای هر گامه و هر گزینش از زندگی و بعد وقتی یه چیزی رو برگزیدیم و اون راه راهو رفتیم نتیجهشو دیدیم مگه نتیجهش که بد هست و در اون راهی که ما میخواستیم بشه نیست بنابراین راه اون رو درست کنیم آزمون و خطای زندگی رو واقعا ازش بیاموزیم اینه که پس ما بکن های روزمره نداریم ولی انتظارمون چشک داشتمون از خودمون اینه که ما بتونیم بر اساس اون باورهامون به شکلی درست در زندگی رفتار کنیم و سپس جامعه اون رو بسازیم آموزش و پرورش بسیار مهم است. در اون مثلا مکانیزم های اجتماعی خیلی میشه توش فرار رفت که یک اجتماع خوب زرتشتی چه مکانیزم های رو لازم داره برای که اونو بتونه همیگیل کنه این آموزش رو. ولی کوتاه سخن یک زرتشتی باید راستی رو در واقع سرمشق خودش بده و از دروغ دوری بکنه این چیز کلیست حالا گفتم در جزیات زندگی بستگی به زمان و مکان و خیلی چیزهای دیگر دارد و فرنگ های اون جوابه ولی قانونی و قانون مداری قانون خوب و درست رو از خود گذاشتن و براساس قانون درست حرکت کردن و عمل کردن هم یکی از در واقع پایه های درست در زیوی هستش. تعداد رو نگه داره تراز رو نگه داره، به اندازه باشه، به اندازه بخوره، به اندازه این تعادل و تراز با یا به اندازه بودن هم یکی از اون واجه های کلیدی است که میتونیم یک بار رسولت تیتوی درمانه اون بفرقی بسیار سپاسگزارم از شما، موبده بزرگوار و از سوی خودم و دستان در کاران این برنامه و جنبش نوزایی ایرانی که این برنامه کاری سوی جنبش نوزایی و همگی ما از شما سپاس و امیدواریم که در برنامه های از دانش گسترده شما و ماروین یا تجربه شما در این رو بحثی بیشتری بگیریم. اه من اه میخواستم یک آگهی رو از انجمن مانترا برای بینندگان بگم که انجمن مانترا انجمنی است که مورد بزرگوارمون پرنشین این انجمن هستند و شما از هر کجای دنیا میتونید بیاید با این انجمن تماس بگیرید و پیوند باشید و از راه ایمیل با این انجمن با مول بزرگوار نامه بدید، پیام بدید و از آموزه‌های این انجمن بهره بگیرید، از راه دور و میتونید بهره بگیرید از آموزش و برگزیدن دین بگیرید. از آغاز از آموزش تا گزینش میتونید از این انجمن بهره بگیرید. من اینجا نشانی های رو برای شما بیان میکن از میم که بتونید یادداشت کنید ایمیل مووج مووار رو و ترنما وبسایت سایت موقع مووار هم هست آموز های بسیار بسیار گیرایی اونجا هست میتونید بهنا بشید و اینکه، چنان خواستار پیوستن به دین بگیم بودید میتونید برای این موبد پیام بذارید و از ایشون یاری بگیرید دلین را. بینندگان گرامی ما به پایان یکی دیگر از سری برنامههای های رسیدیم و ما با در از شما سپاس بزاریم و به اگر با بینندگانمون دارید میتونید بگید تا برنامه رو به سپاس گزارم جونم هم از شما هم از جنبش و براتون آرزو پیروزی و کامیابی دارم در راهی که دارید میرید که هممون هست به ای واقعا بگم که انجمن مانترا خب نخواستیم که روی رسانه های مانند فیسبوک هست و از اون راه هم میتونید در پیوند بشید انجاماً خب البته نشانی خودش رو هم صورت نشانی ایمیلین داره که اینها رو بعدا در اختیارتون خواهیم گذاشت اینها فعلا نشانی های من بود که از راه من برها فرقی نداره حال ما همون داریم برای این انجمن کار نکنیم که اون رو هم بعدا به آقایتون خواهیم بسنیم به هر روی من هم سپاس گذارم از اینکه این زمان رو در دست من گذاشتید در دست من تا بتونیم با هم در این مورد گفتگو کنیم و همچنین گفتم خاست من، آرزوی من، نخست آگاهی دهیست و پراکندن دانش درست و نیک و سپس اینکه آرمان من و آرمان یک بهدین و به آن کسانی که مانند من در این جامعه هستیم آن است که از اخلاق و از وجدان در واقع نگاهبانی بکنیم آن چیزهاییست که با از بین رفتن اونا شیرازه یک جامعه قسم می پاشه میپاشه و دیگه نمیشه روش بنیاد اجتماعی ساخت نمیشه روش بنیاد سیاسی ساخت بنابراین همه تونه به اینی که خودتون واگذار میکنم و آرزو شادی تن دارم دیر زیوید، شاد زیوید، شاد زیوید، تاز زیوید، تکام زیوید و بموی دیدار میگم بهتون تا برانبای آید سپاس گزاریم از شما موبود بزرگر و, و تا دیداری دیگر به شما همینهان و همزوانانمون به خود میگیم و مهلتان از بدود